داستان پیراهن مرد ناراضی پادشاهی بود که یه پسر داشت و اونو به یه جونش دوست داشت اما شاهزاده همیشه ناراضی بود هر روز کنار پنجره مینشست و دوردستها رو تماشا میکرد پادشاه ازش میپرسید آخ چی کم داری چت شده و شاهزاده جواب میداد نمیدونم پدرجون خودم هم نمیدونم چم شده. آشق شدی؟ اگه دختری رو میخوای به هم بگو تا برات خاصه گاریش کنم. حتی اگه دختر قلدردرین پادشاه روی زمین باشه یا دختر فقیرترین کشاورز روی زمین بازم برات خاصه گاریش میکنم. اما پسر جواب میداد نه پدر من عاشق هیچ کسی نیستم. پادشاه هر کاری که از دستش برمیومد برای پسرش انجام میداد تا حواسش رو پرت کنه. تاعت، رقص، ساز و آواز، اما هر روز رنگ روی شاهزاده پریده تر پادشاه تصمیم گرفت ای صادر کنه و از هر گوشه جهان داناترین فیلسوف و حکیم ها و استادها رو جمع بکنه. همه آدمهای های باهوش رو جمع کرد و شاهزاده رو بهشون نشون داد. و نظر خواست. اونام از پادشاه اجازه گرفتن تا یکم فکر کنن و بعد نظرشون رو به پادشاه اعلام کنن. بعد از چند روز همه اون آدما پیش پادشاه برگشتند و گفتند «الا حضرت، ما فکرامونو کردیم. حتی ستاره ها رو هم رسد کردیم. حالا شما باید؟ این کار رو که ما بهت میگیم انجام بدی. شما باید مردی رو پیدا کنید که راضی باشه. راضی از همه چیز. اون وقت پیراهن پسرتونو با پیراهن اون عوض کنید. پادشاه همون روز خدمتکارای خودش رو برای پیدا کردن مرد راضی به سراسر جهان فرستاد. اونو کشیشی رو آوردن، پادشاه ازش پرسید. تو راضی هستی کشیش جواب داد بله الی حضرت بسیار خوب دوست داری اسخفه من بشی کشیش جواب داد اوه ای کاش علی حضرت پادشاه جواب داد پس از اینجا برو بیرون من دنبال مردی میگردم که از وضعش راضی باشه نه کسی که دوست داشته باشه از اونی که هست بهتر باشه و پادشاه منتظر کس دیگه ای شد پادشاهی در همسایگیشون بود گفتند اون کاملا راضیه و خوشحاله یه زن زیبا و جوونی داره و یه آلم بچه تو همه یه هم پیروز شده کشورش تو آرامش به سر میبره پادشاه فورا فرستاده هاش و فرستاد پیش اونا تا پیراهن اون رو ازش بگیرن پادشاه همسایه فرستاده ها رو قبول کرد و گفت بله من چیزی کم و کس ندارم اما حیف که با وجود این همه چیزایی که دارم باید بمیرم و همه چیز رو بذارم و برم این فکر اونقدر منو عذاب میده که شبها خواب خوش به چشمام نمیاد فرستاده ها با خودشون فکر کردن که باید برگردن پادشاه برای اینکه حال و هواش عوض بشه تصمیم گرفت که به شکار بره. توی شکار به یک خرگوش تیراندازی کرد و با خودش فکر کرد که حتما بهش برخورد کرده. اما خرگوش لنگون لنگون پا به فرار گذاشت. پادشاه هم دنبال خرگوش راه افتاد. وسط مزرعه‌ها ها و جنگل‌ها صدای مردی رو شنید که زده بود زیر آواز. پادشاه ایستاد. با خودش گفت کسی که اینطوری زده زیر آواز حتما باید آدم راضی باشه. دنبال صدا رو گرفت و رسید: به تاکستان و بین ردیف اون تاک و انگورها ها رو دید که داره انگور ها رو خص میکنه و با خودش آواز میخونه. جوون گفت: روز بخیر خیر الله حضرت چه عجب سر صبح تو صحرا؟ پادشاه گفت: سلامت باشی جوون پادشاه به جوون گفت میخوای تو رو با خودم به پایتخت ببرم و اونجا پیش خودم بمونی جوون جواب داد ای وای نه اعلی حضرت حتی فکرشم نمیکنم ممنون جامه حتی با پاپ هم عوض نمیکنم پادشاه تعجب کرد و گفت آخه چرا جوونی به این برومندی؟ جوون جواب داد خدمتتون عرض کردم نه من به همین چیزایی که دارم راضیم و برام بسه پادشاه فکر کرد و با خودش گفت بالاخره یه آدم راضی پیدا کردم دوباره رو به جوون کرد و گفت گوش کن جوون باید یه لطفی در حقم بکنی پسرک جوون جواب داد اگه بتونم روی چشمم الی حضرت پادشاه از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجید با عجله رفت و خدمتکارای خودش رو پیدا کرد. بهشون گفت بیاین بیاین که پسرم بالاخره نجات پیدا کرد. و پادشاه خدمتکاراش رو پیش اون جوان برد و گفت آهای جوان مهربون هرچی که بخوای بهت میدم. اما تو هم جوان گفت من چیه رو حضرت؟ پسرم دم مرگه فقط تو میتونی نجاتش بدی. بیا اینجا پادشاه جوون رو گرفت و شروع کرد به باز کردن دوگمه های بالا بالاپوشش اما یهو خشکش زد دستش شل شد مرد رازی حتی پیراهنم نداشت سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی